اشق قید شخصی امشب دیر به خانه بازگشتم و ربازارتارز در خانه منتظر من بود او در وضعیت همیشگیاش روی صندلی راحتی نشسته در حال مراقبه بود ربازارتارز قول لاده بودم بیایم تا صحت و سقم مکاشفاتی را که دیروز در ساحل رودخانه داشتیم به تو ثابت کنم حالا حرف من را بابن می کنی؟ پال آری البته روا دارتارست پس می توانم از بیشتری را بر تو فاش کنم آیا رایهه چوب سندل به مشامت می رسد؟ من می توانم هرگاه که بخواهم از خود رایهه های خوشبو رها کنم آیا خود را آکنده از رحمت الهی حس نمی کنی؟ راستی بگذار تو را لمس کنم میبینی من نور هستی را به تو ازوانی داشتم چه میبینی؟ پال انواجی از نور که مانند موج اوگیانوس به ساحل برخورد میکنند احساسم نسبت به آنها بسیار شدید است این امواج مرا در خود قوطور میسازن ربازار تارز. تو از اکثر مردم بیشتر ساقت تحمل ارتعاشات فلکی را داری تو می توانی بنیه و ارتعاشات خودت را درون حالت نگاه داری این راز عشق است تو این راز را خیلی پیش از این در یک تناسخ دیگرت آموختی اگر به خاطر بیاوری مدتها پیش من این هنر را به تو آموختم حدود یکصد سال پیش در تبت. اصل عشق ورزیدن و تعبیر کردن عشق کاملا از یک دیگر متفاوتند تعبیری که از عشق در نرمله عام آموزش می دهند خطاست من این را بارها و بارها برایت توضیح دادم آرزو می کنم هر زودتر آن را در ذهنت حض می و اجازه نمیدادی مردم افکارت را به هم ریزند عشق همه چیز است و همه کس این اصل عشق است ولی که تعبیر در وجوه تمایز استفاده از آن رخ می دهد ارائه این موضوع به توده های مردم کاری خطرناک است بنابراین یک استاد باید بی تردید آموزش دهد به همسایه خیش همچون فیشتن عشق بورد البته همان گونه که هر گروهی می داند محدودیتی هست که باید در خصوص عشق مورد ملاحظه واقع شود تناقضالود است، مگر نه از آنجا که ما میدانیم نمیتوانیم همه گیراب به مساوات دوست بداریم پس عشق گرم خود را نصار معدودی نموده و بنابر قانون به همه سایرین عشقی غیر شخصی نصار میکنیم پال منظورتان از عشق غیر شخصی چیست؟ ربازار تو باید عشق ورزیدن به کسی را انتخاب کنی که در برگردانیدن آن به تو وفادار باقی میماند و از عشق تو به مقاصد خودخواهانه استفاده نمی کند این مورد استفاده قوه تمیز و تبعیز درست در عشق ورزیدن به هم نوعان توست چرا میگویم؟ استفاده از عشق تو به مقاصد خود زیرا باید این را بدانی که زندگی معنوی از جهاتی و زندگی اقتصادی قابل مقایسه است تو مجبوری تلاش خود را در جهتی هدایت کنی که هم برای کسی که هدف خیرات توست و هم برای خودت بیشترین منافعی را که ممکن است در مسیر پیشرفت معنوی آیت نماید هنگامی که داری یافتی کسی از عشق تو سو استفاده خواهد کرد باید بسیرت به خرج داده و عقب نشینی کنی او را به حال خود بگذار تا درس خیش را بیاموزد هر کسی هر چقدر عشق نثار او کند کمکی به وی نخواهد کرد اگر چه تو موظفی از قانون اطاعت کنی و به همه عشق غیر شخصی نثار داری تقصیر هیچکس را به رخ او نکش و هیچ اتهامی علیه هیچکس در دل مدار در برابر همه روحیه و رفتاری خونسا به ظهور رساند گاهی یک معلم عشق خیش را پس میکشد تا مرید از آن سوء استفاده نکنند و به جای آن عشقی غیر شخصی که عشق خالص است به وی باز میگرداند عشق گرم که به معنای عشق آتشین است در ازای خود عشق گرم می‌طلبد اما هر گروهی حقیقی این را می‌داند که در طبع عشق گرم مشکلات بسیاری ظهور می کنند بنابراین آنها با بصیرت و هوشیاری آن کس را می‌یابند که بتوانند عشق گرم خیش را به او ارزانی دارند به همین دلیل هر گروهی بیش از تعداد معینی پذیرش در هر یک از سفرهایش به این جهان به مریدان نمی‌دهد او آنانی را برمیگزیند که به او نیازمندند و عشقی را که او بر سرشان نازل می‌کند مورد سوء استفاده قرار نمی‌دهند این بدان معنا نیست که او نمی‌تواند عشق ببرسد و در قالب عشق خالص یا همان عشق غیر شخصی همواره از خیش ایثار می‌کند اما او نمیتواند تواند معنوی خود را در رابطه با کسانی که به عشق او پاسخ نمیدهند دهند به جا آولد. هر استاد حقی تقدیر منحصر به فردی را در این جهان اجابت می کند بسته به ای که عهدهدار شده است می با جهان یکی شود یا با خیش اگر بخواهد پنجاه یا یک میلیون مرید به خاطر هدف معنویش در این زندگی برگزیند همان تعداد را به عنوان مجراهای لازم جهت اجابت خدمت خیش برخواهد گرفت آنچه در این امر تعیین کننده است وظیفه است که از جانب سلسله مراتب معنوی برای این جهان به ویداده شده باشد هر چند این به خود وی بسته است که کارکنان معنوی خود را انتخاب کند و در صورت لزوم هر کسی را که در وجوه آوردن مأموریتش به وی کمک می‌کند، برگزیند. عشق خالص یا عشق خدا خود موضوع یک آموزش دیگر است. این هنگامی است که سفیر روح تنها می‌تواند بالاترین قماش عشق را به هر سعادتمندی که تحت هدایت دست راهبر او واقع می‌شود، ایثار کند. عشق از او همچون انوار خورشید ساطع می شود و به سوی آنانی می رود که مجرایی برای عشق خالص او شدند و به مسابقه ابزار مبدل فیزیکی و معنوی جریان عشق وی را با هر کسی که لمس میکنند برقرار سازند ایسا گفت تو نور جهانی به این معنا که همه آنانی که میتوانند نور یا همان عشق را دریافت کنند به آینه‌هایی بدل می‌شوند که آن نور را انعکاس می‌دهند و شادی و شعف به جهان ارزانی میدارند. اگر به این که قوای تمیزت را به کار بیری، عشقت را بدون تبعیض عرضه کنی، دنیا به زودی به تو خواهد آموخت که کارت خطاست است. درس‌هایی که می‌آموزی نشان خواهند داد که بهتر است تنها به آنانی عشق بپردازی که به تو عشق می‌ورزند. آنها را با تمام یاخته های قلبت دوست داشته باش. اما بالاتر از همه به سودماد عشق بورس. به کلام او ایمان داشته باش. به عشق او که به تو تعلق دارد. تا همینجا کافی است. من پیشدانشی را از آن چه قرار است در زندگی برایت پیش بیاید به تو نشان دادم. تو دور دنیا خواهی گشت تا وظیفه معینی را برای سودمات به جا آوری همه گونه ترتیبات لازم برای انجام این ماموریت برایت تدبیر خواهد شد. یکی از سفرهای تو به مقصد آمریکای جنوبی خواهد بود. در نزدیکی کویتو یکی از هفت شهر معنوی جهان را خواهی یافت. این اماکن از چشم توده های نامحرم جهان در خفا نگاه داشته می میشوند. بیش از این چیزی نمیگویم جز اینکه ذهن آگاه تو نخواهد توانست چیزی را که ماورای محدودیت هایش باشد بر تو فاش کند همواره به ماورای ذهن آگاه خود سفر کن مستقیما به سوی سوگماد اصر می کن و پاسخ هر مشکلی را در آنجا جستجو نما بسیاری از اسرار همکنون بر تو فاش نمودم اما آنها را نزد خیش پنهان دارم تا زمان لازم فرار رسد که بتوانی آن را به جهانیان عرضه کنی